اگر روم ز پیش فتنها برنگی زد ور از طلب بنشینم به کینه برخیزد. زد وگر به ره گذری یکدم از وفاداری چو گرد در پیش افتم چو باد بگری زد وگر کنم طلب نیم بوسه صد افسوس ز ده حقه دهنش چون شکر فروری زد من آن فریب که در نرگس تو می بینم بساب روی که با خاک ره برامی زد فراز و شیب بیابان عشق دام بلاست کجاست شیردلی که از بلا نپرهی زد. تو عمر خاک و صبوری که چرخ شعبد باز هزار بازی از این طرفتر برنگی زد براستانه تسلیم سر به نحافظ که گرستیزه کنی rooz gav bestizet.